چندان که گفتم غم با طبیبان درمان نکردند مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست گو شرم بادش از اندلیبان یارب امان ده تا باز بیند چشم محبان روی حبیبان درج محبت بر مهر خود نیست یارب مبادا کام رقیبان ای من ام آخر بر خان جودت تا چند باشیم از بی نصیبان. حافظ نگشتی شیدای گیتی گرمی شنیدی پند عدیبان